هشتم در آن زمان برادرم خوش داشت، زمینی ها را به بازی و مبارزه با خود بکشاند. با این شیوه توانایی های خودش را به آزمایش میگذاشت. از جمله تیزی بینا یا چابکی و چیر دستیش را در همه ی آنچه میتوانست آن بالا بکنند. روزی در نزدیکی دروازی انجیرک در میان کپرهای مردم بینوا، کودکان را واداشت تا با او به بازی پرتاب حلقه بپردازند. بالای سندیان کمابیش خشکیده ایستاده بود و بازی میکرد. ناگهان چشمش به سواری بلند بالا افتاد که پشتش اندکی خمیده بود و شنل سیاهی تن داشت. پدرمان بود. بچه ها پراکنده شدند و زنان در درگاه زغ به تماشا ایستادند. بارون آرمنیوس با اسب تا پای درخت رفت. کوزیمو لابلای شاخه‌های برهنه ایستاده بود. لحظه‌ای به یکدیگر خیره شدند. پس از آن نهار حلزون، نخستین باری بود که با هم رو در رو می شدند. چندین روز از آن هنگام گذشته و وس دگرگون شده بود. هر دو می‌دانستند که دیگر بحث حلزون و نافرمانی کودکانه و یا جبروت پدری در میان نیست. هر گونه گفتگوی منطقی و معمولی بیجا بود. با این همه باید به هم چیزی می‌گفتند. پدرم با لحن نیشداری گفت برای جلب توجه مردم کارهای بسیار برجستهی می کنید. کارهایی که واقعا در خوری یک نجیب زاده است. هر بار که می خواست کسی را به سختی سرزنش کند به او شما می گفت. اما آن بار شمایش نشانه دوری و جدایی بود. کزیمو گفت یک نجیب زاده چه بالایی درخت و چه روی زمین در هر حال نجیب زاده است به شرطی که رفتارش درست باشد. بارون با لحن خشکی گفت گفته پسندیده ایست اما همین چند لحظه پیش داشتید آلوهای یک دهقان را می دستیدید. راست می گفت, برادرم وامان که چه پاسخی بدهد. لبخند زد اما لبخندش از خود ستایی و بیقیدی نبود. چه در همان زمان چهرش هم سرخ شد. پدرم نیز لبخند قمالو زد و نمیدانم چرا چه چهره او هم سرخ شد. گفت میبینم که با پسترین آباش هم دوستی میکنید نه پدرجان، راه خودم را میروم، هر کسی به کار خودش بارون با لحنی آرام و بیهایجان گفت از شما میخواهم پایین بیایید و به ای که در خور موقعیت شماست عمل کنید نمیتوانم از شما فرمان برداری کنم پدرجان و متصفم هر دو ناراحت و درمانده بودند هر کدام میدانستند که دیگری پس از آن چه می خواهد بگوید؟ درستان چه می شود؟ تکالیف دینیتان؟ میخواهید همینطور مثل وحشی های آمریکا روی درخت زندگی کنید؟ کزی چیزی نگفت؟ پرسش بود که با خود مطرح نکرده بود و دلش هم نمی‌خواست که به آنها فکر کند. پس از چند لحظه درنگ گفت؟ فکر میکنید چون چند متر از دیگران بالاترم راستی و درستی نمیتواند روی من تأثیر بگذارد؟ پاسخ ای بود، اما تا اندازه از اهمیت کاری که او میکرد میخواست. در نتیجه نشانه سستی بود. پدرم به این نکته پی برد و با پافشاری بیشتری گفت شورش را با متر و زر اندازه نمیگیرند. حتی یک راه چند وجبی هم میتواند راه بدون بازگشت باشد. برادرم می توانست باز پاسخ زیرکانه ای بدهد و یا حتی زربال مسئله لاتینی به زبان بیاورد. و اگر چون این کرده بود، امروزه هیچ چیز از آنچه گفته بود به یادم نمی آمد. اما از آن همه جمله‌های دهن پر کن خسته شده بود. این بود که زبانش را بیادبانه بیرون آورد و به صدای بلند گفت اما منی که این بالا هستم، شاشم خیلی بلندتر از مال دیگران است. جمله چندان پر نبود. اما دیگر جایی برای بگو مگونه میگذاشت. از پیرامون دروازه صدای قهقهی ولگردان بلند شد انگار جمله را شنیده بودند. اسب پس رفت: روندو دهانه او را کشید و خود را درون شنل پیچید. گویی میخواست برود. اما برگشت، دستش را از لای شنل بیرون آورد و آسمان را نشان داد که ناگهان ابریسیا آن را پوشانده بود. و فریاد زد: « مواظب باش پسرم. آن بالا کسی هست که میتواند روی همه ما بشاشد این را گفت و به عصب مه میزد باران که روستایان از مدتها پیش منتظرش بودند به شکل رگباری از گله های درشت باریدن گرفت. کودکان گونی به سرپی رامون کپرها هر کدام به سویی می و می خواندند باران باران می بارد. آب از آسمان می بارد. کازیمو به زیر پر پربرگ پناه برد اما برگ‌ها چنان خیس شده بود که با هر حرکتی به او آب می‌پاشید همین که باران را دیدم دلم برای برادرم سوخت مجسم می‌کردم که خود را به تنه درختی چسبانده است تا موج کج باران خیسش نکند و میدانستم که به خاطر یک رگبار به خانه باز نخواهد گشت به دو به سراغ مادرم رفتم باران می آید مادرجان. حالا کوزیما چی کار می کند؟ جنرال پرده ای را کنار زد و باران را تماشا کرد. همچنان آرام بود. بدترین عیب باران این است که زمین را پر از گلولای می کند. اما آن بالا از این خبرها نیست. یعنی شاخ و برگ درخت ها نمی گذارد بشود؟ حتما می رود به قرارگاه زمستانیش. کدام قرارگاه مادرجان؟ باید فکر همچون جایی را برای خودش کرده باشد چطور از برایش یک چتر ببرم؟ گویی واژه چتر ناگهان او را از آن موضع دیدبانی استراتژیک پایین کشید و درگیر نگرانی های مادرانه کرد ژنرال گفت: « خیلی خوب است یک بطری شربت سیب هم برایش ببر شربتش خوب داغ باشد بپیچش توی یک جوراب پشمی. یک تکه ما شمه هم به هم ببر که بیاندازد روی شاخه ها و خیس نشود. ببینی الان کجاست است خدا کند بتوانی پیدایش کنی. ها را برداشتم و با یک چتر بزرگ سبز به باغ رفتم. چتر دیگری را هم برای کاظیم و خود بردم. چندین بار به نشانه ای که قرار گذاشته بودیم سود زدم. اما در پاسخ چیزی جز صدای شوشوره باران بی پایان روی شاخ و برگ نشنیدم. هوا تاریک شده بود. نمیدانستم بیرون از باغ به کجا بروم. چند گامی روی سنگهای لغزان و چمنزار پرگل و لای و لا لای آب زدم و به این سو و آن سو صوب رفتم. همچنان سوت می زدم و چترم را کج می کردم تا صدایم بهتر شنیده شود. باران به چهرم می خورد و صدای سوتم را خفه می کرد. می خواستم به سوی تکه زمین های همگانی بروم که درختانی بسیار بلند داشت و گمان میکردم برادرم آنجا برای خودش پناهگاهی ساخته باشد اما در تاریکی راهم را گم کردم و همچنان که چتر و بسته ها را به خود می فشردم سرگشت برجاماندم تنها همان بطری شربت گرم که درون جورابی پشمی پیچیده شده بود کمی گرمم میکرد ناگهان در تاریکی بالای سرم چشمم به نقطه روشنی افتاد که نمی توانست از ماه و ستاره ها باشد حس کردم کسی به سوتم پاسخ می دهد. کازیما صدایی از آن بلندی باران زده گفت بیا جون کجایی اینجا صبر کن آمدم زود باش خیس شدم به هم رسیدیم برادرم که خود را در پتوی پیچیده بود تا ترین شاخه یک درخت بید آمد تا به من نشان دهد که چگونه بالا برف. و چگونه از راه پرپیچ و خم شاخه ها خود را به بالای درخت آلشی برسانم که روشنی از آنجا می آمد یکی از دو چتر و چندهایی از بسته ها را به او دادم کوشیدیم با چترهای باز از درخت بالا برویم اما این کار نشدنی بود و در هر حال خیس می شدیم به جای رسیدم که عمرا می برد و چشمم به روشنایی افتاد که از لای درز چادری بیرون می زد لبه چادر را به کناری زد و مرا تو برد. در روشنایی فانوس، اتاقک کوچکی دیدم که همه دیوارهای آن از پرده و قالیچه بود. تنه درخت از وسط اتاقک میگذشت و کف آن هایی بود که روی شاخه‌های ستبری پهن شده بود. در نخستین لحظه حالتی داشتم که انگار به کاخی پا گذاشته بودم، اما چیزی نگذشت که فهمیدم آن کاخ لرزان و آسی پذیر است. سنگینی ما دو نفر توازن آن را به هم میزد و کازیمود درجا دست به کار بستن درسها و جلوگیری از نفوس باران شد. هر دو چتر را باز کرد و زیر سوراخ های سقف چادر گرفت. اما آب از چندین سوراخ ریز تو می آمد و هر دو خیس شدیم. سرمایه توی چادر هم چنان بود که انگار در هوای آزادیم. با این همه چندین پتو در آنجا گرد آورده بود و میشد خود را در آن پیچید و تنها سر را بیرون نگه داشت. فانوس تکان می خورد و روشنایی گونگی داشت. سایه شاخ و برگ ها روی دیوارها و سخوان خانه شگرف تصویر های در هم پیچیده ای را رقم می زد. شربت سیب را با ولع می نوشید و با هر جرعه می گفت: واه. واه. گفتم: خانه قشنگی داری. با شتاب گفت: موقتی است. هنوز خیلی مانده تا کامل بشود. همش را خودت درست کردی؟ پس چه هیچ کس ازش خبر ندارد. من هم می توانم بیایم اینجا؟ نه. جایش را به دیگران یاد می دهی. پاپا پا گفت که دیگر هیچ کس را دنبالت نمیفرستد. با این همه هیچ کس نباید از این خانه بو ببرد. به خاطر دوست ها می گویی مگر با تو دوست نیستند. بعضی وقتها چرا؟ بعضی وقتها نه. آن دختره که اسب دارد چه؟ به تو چه مربوط هست؟ میخواستم بگویم که یعنی دوست توست با هم بازی کرده اید؟ بعضی وقت بله، بعضی وقتها نه. چرا بعضی وقت نه؟ بعضی وقتها چون من دلم نمیخواسته، بعضی وقتها چون او دلش نمیخواسته. به او اجازه میدهی بیاید اینجا؟ کزیمو چهره در هم کشید و به پهن کردن پارچه مچاله شده ای روی یک شاخه پرداخت. با لحنه گرفته ای گفت اگر دلش بخواهد، اجازه میده هم بیاید. دلش نمیخواهد؟ کزیما دراز کشید. زیر لب گفت، از اینجا رفته. آهسته پرسیدم، بگو ببینم، با هم نام زدید. برادرم گفت، نه. و زمان درازی خاموش مان. فردای آن روز چون هوا خوب بود تصمیم گرفته شد که کشیش فوشلافلور آموزش برادرم را از سر بگیرد. چگونگی کار روشن نبود. فقط باران رو به کشیش کرد. به جای اینکه بنشینید و مگس ها را تماشا کنید، و از او خواست که برادرم را پیدا کند و چند جمله از ویرژیل را برای ترجمه به او بدهد. سپس فکر کرد که شاید کار بیش از اندازه دشواری را به عهده کشیش گذاشته است. و به سراغ من آمد و گفت برو به برادرت بگو که تا نیم ساعت دیگر برای درس لاتین به باغ بیاید. این را با لحنی هرچه طبیعی تر گفت. لحنی که بران شده بود از آن پس درباره او به کار گیرد. یعنی اینکه که کازیمو میتوانست بالای درخت ها زندگی کند. اما کار و بار هر روز بر همان روال همیشگی ادامه میافت. و درس انجام شد. برادرم روی شاخه نارونی نشست و کشیش روی چارپایی زیر درخت جا گرفت و با هم به فراگیری دو های لاتین پرداختند. من در آن دورا بر بازی می کردم و کمی از آنجا دور شدم. هنگامی که برگشتم کشیش را بالای درخت دیدم. پاهای دراز و لاغرش را که جوراپای سیاهی داشت بالا می کشید تا به شاخه ستبری برساند و برادرم زیر بغلش را گرفته بود تا کمکش کند جای راحتی را برای پیرمرد پیدا کردند و هر دو نشستند و بلند بلند به بازخانی یک جمله دشوار پرداختند. برادرم جدیت بسیار نشان میداد. سپس نمیدانم چه شد که شاگرد گریخت. شاید باز هواس کشیش پرت شده و در آن بالا همه ی آنچه را که در پیرامونش بود فراموش کرده بود. هرچه بود در میان شاخه ها تنها مانده بود. کتاب را روی زانو داشت و با دهان باز پرواز پروانه سفیدی را تماشا می‌کرد. پس از آنکه پروانه ناپدید شد، کشیش به خود آمد و خود را در میان زمین و آسمان یافت و به ترس افتاد. دو دستی به شاخه چسبید و آنقدر فریاد زد کمک کمک تا کسانی با نردبان به سراغش رفتند. مدتی طول کشید تا کشیش آرام شد و پایین آمد.